قسمت اول از مجموعه پادکست های مکالمه انگلیسی برای همه در خدمت شما زبان آموزان و, و دوستان عزیز هستیم در سلسط مباحث آموزش مکالمه یه سری از نکات رو خدمت دوستان عرض می امیدواریم که به دقت اونها رو مورد تمرین و بررسی قرار بدید درس اول تون هست کنم که برای صحبت کردن یا مکالمه در هر زبانی حتما باید با اجزا یا ارکان تشکیل دهنده یک جمله آشنا بشه. یعنی باید بدونیم چی رو کجا بگذاریم و چطوری جمله رو شروع بکنیم. ما اگر یک جمله رو به درستی شروع کنیم بقیه جمله به راحتی کامل میشه جمله رو در انگلیسی همیشه با فاعل شروع کنید. بعدش طبیعتا فعل میخواد حالا رکن سوم جمله به فعل بستگی داره که فعل ممکنه مفعول داشته باشه که اصطلاحا بهش میگیم فعل متعدیه و اگر نیاز به مفعول نداشته باشه بهش میگن فعل لازم. بون مثال به این مثالا دقت بکنید. من میروم. حسین استراحت میکند ملیکا راه میرود این سه جمله از دو رکن یا دو قسمت تشکیل شده که عبارتن از فائل و فعل. حالا این سوال پیش میاد از کجا بفهمیم فعل لازمیه متعدیه پاسخش اینه که از خودتون بپرسید که چه کسی را چه چیزی را اگر جوابی برای سوالاتون پیدا کردید یعنی فعل شما داره مفعوله پس فعل شما یک فعل متعدیه تو مثال بالا جواب برای سوالاتون پیدا نشد. پس هر فعل لازم هستن یعنی چیکار بکنیم به این صورت ملیکا راه می روید. حالا می پرسین. چه چیز را چه کس را اصلا معنی نمیده. من می رویم. چه چیز را چه کس را بازم معنی نداره حسین استراحت می کند چه چیز را چه کس را بازم معنی نداره <تصفح> چون معنی نداره پس ما فل فله لازم هست <تصفح> پس تا اینجا ما تا قسمت صدنده ای فیل رو یک جمله رو مورد بررسی قرار دادیم. فائل، بعدش فعل و بعدش مفهوم. حالا این جملات رو دقت بکنید. مشتبا نان خرید. سوال بپرسید. چه چیز را چه کس را ؟ میشه جوابش نان. احمد نامه را فکس می کند. فکس می چه چیز را؟ نامه را. مادرم شام پخت. پخت چه چیز را؟ شام را. مریم خواهرش نسیم را به بیمارستان می‌رساند. سالم پرسیم مریم چه کسی را به بیمارستان می‌رساند؟ نسیم را. در تمام موارد شما متوجه که اگر جوابی وجود داشته باشه یعنی که فعل شما متعددیه. خب. پس باید دقت بکنید که وقتی میخواید جملات انگلیسی رو بسازید با فائل شروع کنید. وقتی فائل رو میگید منطق جمله به شما میگه که بعدش با چی استفاده کنید که طبیعتا بعدش فل میخواد حالا باز هم معنای فعل به شما این کمک کمکو میکنه که آیا بعدش لازمه مفعول بیارید یا نه خب بعد از اینکه فعل رو ساختین و استفاده کردیم بعدش اگر فیلتون متعدی باشه مفعول میخواد بعد از اینکه مفعول رو آوردید یکی رکم یا قسمت دیگه هم باقیی مبانه به نام قید حالت که به شما نشون میده که این عملی که انجام شده چگونه انجام شده حالا یا فیلتون متعدی بوده یا فیلتون لازم بوده مثلا من می رویم. حالا ممکنه شما کاملتر کنید بگید من به آرامی می روم من به تندی می روم علی مشتبه را صدا کرد حالا ممکنه شما کاملترش کنید بگید علی مشتبه را به آرامی صدا کرد یا به بلندی صدا کرد من رانندگی می کنم قید حالتتون مثلا بگید من با دقت رانندگی می کنم خب پس دقت بکنید خلاصه درس به این صورت میشه که تا اینجا ما چهار تا رو, رو یا جزء تشکل دهنده رو استفاده کردیم فائل آوردیم بعدش فعل و بعدش اگر فعلمون مفعول داشت مفعول و بعدش هم قید حالت دقت بکنید مثلا من جمله رو با این کلمه شروع شروع میکنم من این میشه فائل جمله. بعدش یه چیز میخوام که این جمله رو کامل تر بکنم من میرانم چه چیز را؟ ماشین را؟ چطوری میرونی؟ حالا یا آهسته یا با دقت I من drive میرانم my car ماشینم را چگونه؟ با آرامی با دقت. پس دقت کردید همونطور که دقت کردین اینکه شما جمله رو با چه کلمه شروع بکنید به شما در ساختن جمله بسیار بسیار کمک خواهد کرد. و در انگلیسی هم سعی بکنید که حتما جملاتتون رو با فائل شروع بکنید.